قابل توجه کلیه متقاضیان سبتنام نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ستاد برگزاری انتخابات در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات بدین وسیله شرح وظایف و اختیارات مجلس محترم خبرگان را اعلام مینماید. تشکیل جلسات هفتگی به صورت منظم و طلب دعای خیر از درگاه باری تعالی برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری به مناسبت‌های گوناگون اعلام وفاداری و جانفشانی به مقام معظم رهبری و تجدید بیعت روزانه با آرمانهای انقلاب و امام در محیطی جرم و صمیمانه که بحث و گفتگو پیرامون وجوه نورامنی و کرامات مخفول مانده مقام معظم رهبری در جهت تسبیت و تقویت پاویه های نظام و انجام سخندامی و شرکت در مراسم مختلف و تبیین جایگاه منحصر به فرد ولی فقیه در نظام اسلامی برای عموم مردم نظارت از کلیه علاقمندان به ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان علل خصوص حاجی حسن خمیلی خواهشمندیم با در نظر گرفتن موارد فوق اقدام به ثبت نام و یا انصراف از ثبت نام در این انتخابات سرنوشت ساز بنمایند ستاو برگزاری انتخابات مجلس خبرگان